دلوپیکار جو پیکار جنگ است که حق پیرایگان یا را یار جنگ است دلوپیکار جو پیکار جنگ است که حق پیرایگان یا را یار جنگ است. اگر خواهی سرافرازی و آزادی و عزت علی دی قفلین اسرار جنگس اگر پای کی سعادت خاص گاری نسیمینی جهت رهوار جنگس اگر پای کی سعادت خاص گاری نسیمینی جهت رهوار جنگس ز خون آزادی بیاره شکوایی رنگ این گلزار جنگاست ز آزادی بیاره شکوایی رنگ این گلزار جنگاست دل او پیکار کور جو پای کور جنگاست را یار جنگاست اگر خواهی سرافرازی و آزادی و عزت کلیدی قفلین اسرار جنگ است بیا برخیز و دشمن کوب زیرا شکستی دویست مار جنگ است بیا برخیز و دشمن کوب زیرا شکستی دویست مار جنگ است زیسازی زندگی آموختم من زی غول غلی هر تار جنگ است زیسازی زندگی آموختم من زی غول غلی هر تار جنگ است دلپیکور جو پیکور جنگ است که پرایگان را یار جنگ است اگر خواهی صرف رازی و آزادی و عزت کلیدی قفل اسرار جنگ است دلی گردن کشان نپیسندت اجاز نجاد از شر استکبار جنگ است دلی گردن کشان نپیسندت اجاز از شر استکبار جنگ بزن آتش با صحبتنای دوشمند که توفانی همین دوار جنگ است بزن آتش به عشرتنای دوشمند که توفانی همین دوار جنگ است دیلا پیکار جو پیکار جنگ است که حق یا گان را یار جنگ است فأجر خاهي سر أفراسي وآسادي وعزا كليدي قفل أسرار جنگس فلا هو آبرو خلقي مارا رهي تأمين و استقرار جنگس فلا هو أبرو خلقي مارا رهي تأمين و استقرار جنگس ماشامی خست در خوش بوست اصبیح دلی آشوف تر دل دار جنگ است ماشامی خست در خوش بوست اصبیح دلی آشوف تر دل دار جنگ است دلی آ پیکار، چنون پیکار نگ است کغپ من قبیشت من است اگر خواهی سرافرازی و آزادی و عزت کلیدی قفلین اسرار جنگ است بگو برخی ظلمت مردگان را نیهادی خوف ترابی دار جنگ است بگو برخی ظلمت مردگان را نیهادی خوف ترابی دار جنگ است بنازم مردمی مرد و را که شام و صبحش‌آن هر بار جنگ است بنازم مردمی مرد و را که شام و صبح‌آن هر بار جنگ است دلو پیکارجون پیکار پی جنگ است که اقپیرا یک را یار جنگ است اگر خواهی سرف رازی و آزادی و عزت کلیدی قفل اسرار جنگ است در آنجا رسم دینی آزادگان را سلات و ساوم و استغفار جنگ است در آنجا رسم دینی آزادگان را سلات و ساوم و استغفار جنگ است گهه با نفسی سرگرم صف مندن گهه با میلی سوار جنگ است گهه با سرگرم در صفن گهه با میلی رکبار جنگ است دلو پیکار جو پیکار جنگ است حق پرای جان را یار جنگس دیروپای کارجو جو کار جنگس حق پرای جان را یار جنگس اگر خواهی سر فرازی و آزادی و عزت کلیدی قفلین اسرار جنگس دیروپای جو پای کار